دارم یکی دیگه از پیش نیازهای مهم برای اینکه یه هیپنوتیزور خیلی خوب و اثرگذار بشید رو خدمتتون ارز کنم و اون موضوع گراندد بودن، پایدار و باثبات بودن شخصیت شما و من در مورد این موضوع مثال خواهم زد که دقیقا متوجه شید که بحث چی هست و خوب دقت کنید علت اینه که اول دارم این موارد رو اشاره می بهش این پیش نیازها رو میگم باین لطی که اگه شما پیش نیاز قوی رو داشته باشید و این پیش نیازهای مهمی که تذکر داده میشه رو توی شخصیتتون ایجاد کنید خواهید دید که چقدر توی استفاده از هیپنوتیزم و توی سرگرمی روی دیگران یا خودتون موثرتر و قویتر ظاهر خواهید شد در حالی که اگه این پیش نیازها و پایان نباشن هزار تا تکنیک که یاد بگیرید باز شما نمیتونید اثر بذارید عملاً و و به همین این رو خدمتون ارز میکنم اما منظورم از این که میگم شخصیت تون باید grounded و پایدار بشه چیه تا شده کسی رو ببینید که سعی کنه روی شما اثری بذاره یا سعی کنه شما رو جذب چونم مثلا یه فروشندهی که میخواد شما رو جذب فروشگاهش کنه یا یه کسی که میخواد نظر شما رو جلب کنه برای رابطه عشقی یا هر چیزی تا شده با فردی مواجه شید که اصلا خودش پایداری درونی نداره بعد تازه میخواد رو شما هم اثر بذاره یعنی ممکنه خول باشه مثلا صداش داره میلرزه آرامش نداره میگه تو رو خدا بیاید از من خرید کنی تو رو خدا بیاید مثلا یا به بشکل‌های مختلف تو جاهای مختلف قطعاً دیدید خیلی از افراد هستن که خودشون هنوز این پایداری رو ندارن بعد میخوان تازه رو بقیه هم اثر بذارن این که اصلا خنده‌دار و عملی نیست و علت اینه که شما باید توی گفتارتون توی وجودتون توی سطح آرامش و حضور ذهن‌تون این پایدار بودن رو ایجاد کنید چون زمانی میتونید اثر بذارید روی دیگران که اول اصلا خودتون قرض شده باشید خب شما نمیتونید از روی یک کشتی که با یه باد تکوم میخوره و چپ و راست میشه و اینها بیاید یه توپ جنگی بذارید یه کشتی بزرگ بزنید ضربه و لگد خود اون توپه توپ جنگی کشتی رو چپه میکنه چون شما هنوز پایداری و ثبات اولیار ندارید اما اون کشتی بزرگی میتونه با یه توپ جنگی با یه تفنگ با هر چیزی با سلاح آتشین، سلاح گرم شما رو بزنه، کشتی شما رو بزنه چون که اون پایداری داره روی اون هر چقدر تیرو اینها هم شلیک بشه پایداری اون کشتی بزرگ به هم نمیخوره و بنابراین نکته که دارم بهتون میگم خیلی مهمه Groundedness یعنی شما grounded باشید شما پایدار باشید شما اگه دارید کسی هیبنوتیز میکنید اگه دارید با کسی حرف میزنید چقدر کلامتون، گفتارتون، صورت حرف زدنتون نیازهایی درونشون خیلی ها نیاز دارن واسه همین آرامش ندارن. خیلی وقتی مثلا با دختری دارن حرف میزنن یا باهی پسری دارن حرف میزنن توی رابطه اشقی مثلا این hey, نیاز دارن میخوان زود به این نتیجهای برسه. میخوان زود به اون چیزی که میخوان برسن و این شما رو از groundedness و از پایدار بودن خارج میکنه. شما استوار نیستید. من دعوت کنم از شما که پایدار و استوار بودن رو تمرین کنید و به گفتارتون هم بیارید به همه بخش شخصیتون. یعنی اینکه خوب نگاه کنید که همین الان من توی کلامم توی لحن صحبتم چه میتونم یه آرامش و صباتی رو ایجاد کنم و همین صحبت مستقیمم هم میتونه انتقال داده بشه به ناخودآگاه هر کسی که داره این ویس رو میشنوه بیاسی که توش نیاز نیست توش عجله نیست توش حتی هدف خاصی نیست عجله برای رسیدن به هدف خاصی نیست خیلی پایداره مثل کشتی که خیلی پرقدرت وسطی اقیانوس وایستاده و خیلی آرومه هیچ موجی تکونش نمیده. حتی اگه خبر عجیبی بشنوه، حتی اگه خبر خوب یا بدی بشنوه، آرامش و گراندد گراند بودنش کاملا حفظ میشه. و این آرامش ویژگییه که خیلی مهمه توی وجودتون ایجاد کنید. اگه این گراندد بودن رو ندارید، کار کنید رو خودتون. به این ویژگی فکر کنید. صداتون رو ضبط کنید بر خودتون بذارید بررسی کنید. زبان بدنتون ببین خیلی نشستن و تی دست می کووبن دارن پاشونو تکوم میدن اینا به درد نمیخوره اینجوری نمیشه رو بقی اثر گذاشت. خیلی میخواان چیزی بقی بفروشن عجله دارن اصلا حس میشه توی کلامشون توی تون صداش این عجله این هل بودن این نبود آرامشه حس میشه. و بنابراین اگه میخواید تو مهارت های ارتباطی قوی شید خصوصا هیپنوتیزم که دیگه ته مهارت های ارتباطیه حتما کار کنید روی اینکه شخصیتتون رو استوار کنید، پایدار بشید، آروم باشید، حضورتون توی لحظه رو بیشتر کنید، مدیتیشن کنید و خواهیدید که این پایه چقدر زندگی شما رو مهارت های شما توی و کل داستان های ارتبایت تو زندگیتون رو چقدر بهتر و قوی تر میکنه اگه این پایه رو ندارید هنوز سراغ بقیه مراحل و تکلیکای هیبنوتیزم نرید چون که از همین الان به تمرین کنید این اصلا یه تمرینی که من به شما میگم از همین لحظه دقت کنید توی زندگیتون توتا یه روز آیا دارید آروم حرف میزنید آیا صداتون با صبات و استواره دارید درست نفس میکشید آرومید یا عجله دارید حضورتون تو لحظه، توی لحظه بیشتر کنید موقع میبینید که چقدر سرگزارتر میشید